می خداوند رهنماش می صلا و اللهم هر شب بحث درباره روایات بود و مثلا این روایات اخلاقه ها و شدیم ارسو تا اینجا رسیدیم که این رواهت در حفظه هایتی در مسابر ارسانت مشهور هست در نصف فقی بخاری و دیگران آمده کتب عربعی ما فقط در فقی به صورت محسل نقل شده در وقیه کتب عربعی ما این رو نداریم در دو, دو متن در کتاب فقی که دو متن هم در این کتاب فعلا مواصل هستن شما یک و دو باب 67 از آدابال همم و سایر. به اون چاپ قردین یک میشه به این چاپ آیان آراده جلده 2 میشه به اون دو توضیح اجازه شد و روایت سرومی هم داریم که در اینجا جا سآب سآب و ساید به شما این حدیث در کتاب ما آنال اخبار وارد شده صدوق و خود مردم صدوق هم این دوباراتی در کتاب فقیق نیمورده من اینکه یعنی این که بگیم چون آخرش داره و تشبه به مجوز در فقیق داره به یهود بگیم مثلا یکیش اشتباه دیگری رفایی خلاف ظاهره اصافه چون الان ما داریم یعنی در میانه مسابه رحب سنت همون برد نه هست همون این مرد هست همون مجروس هست همون یهود هست و نیم بگیم که این دوتا در بارد ظاهر شلاح ظاهر یه روز متعرضه این دوات شما رسه شدیم که اضافه در این که در تحضیب و سارو کافی نیاماده بلکه در این طور دیگه هم نیاماده مثل همه ها دویدنه هم نیاماده اضافه بر این جهاز که در این مساده هم نیاماده خ در کتاب فقیه این مرس رو نگورده حالا چین فی و فیبر و به سندی به اصطلاح اصطلاح سندی استاد ایشان حسینیم ابراهیم ایشان در از اروشه نداره توصیح شده محمده بن جعفر حسدی از اجلای اصحاب موسطن ابراهی نخیه توصیح من شده اما من حیث المجموع حدی از ربارتش همه شده حسید ابن یزید نوفلی, نوفلی معروف معروفیشون هم یه تضعیفان مایی داره یا توصیح نشده البته وقت ادهی مثل آقای خوییان بگونه شما علی ابن قراب هم توصیح نشده و ادهی از آقایان ما بسنان لاغر باید بخاطر علی ابن قراب مرور زیزه در علی ابن قراب توصیح نشده اما وقتی به مراجعه میکنیم به مشمولی کلمات احلی سنت ساحتی به بغداد در همین جلد 12 تاریخ بغداد شرح حالی ازش داره تقریبا شخصیت علمی حساب میشه پیش ما نقش ریاض نیست اما پیش اهل سنت نقش او بیشتره و از لواهر عباراتشون اینش اینه اشکالشون قرین است ایشون شیعه میده بهلا وثاقتش محل اشکالشون نیست ما هم از این راه های اعتماد میکنیم مشکل نداره که گفتن این حدیث لااقل به خاطر علی بن قراب به امس ام محمد نهبی هم آقای توزیلاتش بودش بعد احتمالا علیه زغرا چیزی بین بین باشه نه شیعه باشه نه سنی سنی در اون زمان بین گفتن که به اصطلاح یک نوع مثل زیدی مانه که اینا نسلس بودن هم اهل بیت داشتن هر خلافت رو برمون احبه دومی سابه شده و هر حال در نیست که تشعیعشون مراد این باشه نه تشریح خود ما اصطلاح ما و انتاکه بلیه نقراب وجود ما هستیم صحبت خیلی زیاده احتیاج به خیلی نکات که داره در مسادر ما در مسادر احسانه صحبت کم باشه اون مسادر ما خیلی چون احامای شدیدی واقع شده از در جالشه روز از خواب ما واقع پرشنان بوده شده که به نظره با قطعا غ به هر حال باید اون بحث پرنه نمیشه چون از میکنم نازل گفتن که پایدن داره کامل گفتن توی این میشه این روایت به لحاظ سردی مشکل داره به لحاظ مستری خب پایین هایی اشکالش بیشتره که اصلا واضح نیست یک نقطه این من اینجا ارزو کنم خب آیا حتیم متنم که ما تو بحثان ولو درسم خارجی فرق نروفه ولکن خب یک مقدارم مسترشناسی و کارو روی مسادر و با مسادر از خواب بزر اساسی که میشه ندای خواهی نخواهی هم خواهن درست خارج این دبایی از تو شیخ صدو تو اخبار روزه من شیخ به اصطلاح همزمان مصنفات داره خب به طریق خودشان میگه لن میخونی شعنیفی شعن در شعنیل مصنفی از در بوده که در یک موضوع واحد بوده اول آره روز ما تک نگاری میگه مثلا الوشرای ایشان مصنفه میصونه هر روایتی که گوش گوش علت داره لعن نداره جمع کنه اینه و اصطلاحش این بود که مصنفات اعم صحیح و سقیمه اع صحیح دارن صحیحن دار صحیح چراشون هدف اینه هر دوی روش لعنده باشه اونقدر ضعیف باشه اونقدر صحیح باشه ما آن الاخبار را یکی از مصنفات ایشونه اونام ببین ما هر حدیثی که گردش معنا شده واستان که از ما پلسته چرا که از ما, ما جعبار ایمان پلست کنم چون معنا که از حدیث رو، ایشون اینجور اخبار رو در این کتاب جمع کرده بسانیدیم کتاب معنار اخبار در این احساسه که من چند نفهم هست کنم اگه بنا بشین واستان چیزی بود کتاب بهار الان تعلیف بشه که ما در جای معارف درباره حدیث شیعه موضوع موسو. مثل مثلا موسوعه حدیث الامامی یک موسوعه برای حدیث اهل بیت بنویسیم به جای معارف اخوات صدوق به کار ببریش چیزی کتاب ادب مثلا یک کتاب روایاتی که متأثر شده در متأثر نقطه ادبی شده اینا مثلا یک بشه هم بکنیم حالا یک اشکی معارف اخوات کتابایی که روایاتی که درش یک خبری رو تفسیر کرده چه فر مثلا مراد از آل شی روایات روایاتی درمیاد یعنی لطفین در خلال کتاب ایشان مثلا یک جایی چند صفحه از قریبل حدیثه ابو عبید نقل کرده سند هم داره چون خواب ما تصور کردن چون سند داره یعنی این سند به کتاب قریبل حدیثه هیچ نه از های زنجان هست نمی‌شناسن اخباری فلان زنجانی قال حدیث این حدیث به عبد ابی این سند نیست در قریبل حدیث فقط ابو عبید کتاب ابو عبید رو که کتاب معروفی بوده کتاب قریب الحدیثی ایشان رو ایشان با این سند نرم شد کتاب معامل اخما خب طبیعتا این یک نکتهی هم هست این من این چون کتاب غریبال الحدیث ابو عبید چهار جلده خب کل نقلی که برای صلو از این کتاب داره مثلا ممکنه 15 صفحه بشه از چهار جلد 15 صفحه بهشون همون خب که نشون می‌خواد خب که داریگر کاری نیست و همیشه بیاره داره همیش <تصفيق> من از کاری بوده‌ای بیاره، همه کتاب رو بیاره. چه احساسی داره که انسان این سطحی نداره شو بیاره؟ منم میفهمم. هر از این یک نکته‌ای است به لحاظ کتابشناسی که در نظر داشته باشی و نمیفهمم ولی منم اینگونه. منشون شاید دیدن خند درست یا که چون خند درست حدیثه. این تاریخ روی کتاب عبو کتاب هم چاپ شده در کتاب خیلی شوهر پیدا نکره شاپ همی شاپ همی داریم و مرده که شاپ یه در دارن من و سرشن نهایی ابن جامعه تر بود دیگه اون که آمد اینا نزخ کرد چون نهایی ابن از هم داره این کتاب قریب الحدیث ابو عبید بسیار کتاب خوبیه این صافت ابو ای که از واقع شخصیت های علمی بزرگی حق الله فاضلیه در حدیث غیر حدیث خیلی خب در این چند کتاب شما موجوده که قریب حدیثش من دارم یک حال انوادش بسیار مرد ملایی که صافت و یه نقطه دیگه هم ارزو این بیچاره با یه نفر دیگه اشتباه میشه اون ابو عبیده هست این داسته خب بازه هست تو شید همینطور این حدیث اشتباه شد به صدفت همین حدیث نشته قال ابو عبیده از حدیث اون عبارد موانه ابو عبیده موانه ابو نیست مگر این ابو عبید از که گرفته نه احتمالش حسول الله عبارد کنب ابو اصلا که تصادف روزگار این دوتا قریب با هم ابو عبیده و ابو عبید مثل ابو عبید یک لفتی 11 سال بعد از اونکی پاتشه اما هر دو در دویست و ده ابو عبیده اصلا نیستی 2223 ابو عبید یکیشون بصراوی معمر ابن مصنا ذکرش معمر محمدی است معمر ابن مصنا ابو ابدی بصری که خوب اینم واقعا اینم اشییه سبحان الله مثل درعین مثلا خیلی هم با هم مشابه این واقعا اصلا یکی از علمای یه حلامای مسلمین بزرگان مسلمین چهار مثلا اینکه ابو ابدی از زمان خیلی واقعا مرجع پرکار اون هم مرجع پرمعلوماته در حدیث و و اینجا لغت شنها. مقام بالایی داره اون اسمش ابو عبیده است و اهل بسره هست بلا نصور برای در اطلاع لسن بشه اصبت داروش این یکی مال خراسانه ابو عبید قاسم ابن سلام اسم خودش رو پیش او فهم خیلی بر هم نزدیکه این قریب الحدیثی که الان چاپ شده یا الان اموال که چاپ شده این مال ابو عبید قاسم ابن سلام هم برسیه با بخارای مثلا بحثی باشه ایشون مال خراسان قدیمه با اون رقی نداره این ابو اوید همینجا صدوق بعد از این حدیث شه قال ابو اوید در شعر حدیث اینی که من الان دارم قریب الحدیث مراجعه کردم موغوله اینو ز کاربرد حدیث منظور ابو اوید ابو اوید نیست البته در یه تاریخ میذارم که ابو اوید متهمه که مثلا مصالحش از اونی که رسول ما بی عزیز هست و اولا اون چی که صدور در زیر حدیث در اینجا آوردن به اینه تو کتاب قریب هست با بردی اختلافات به اختلاف نسخ کردی نمیخوندار چهر بودم شاید آقا یه بخش ما کلده با بردیش اون که فرمان مهمه اینه که من نفهمیدم چرا بلا فاصل بردی نهیزه و میخواله کسایی از کسایی نه تمام این مطلب قادر کسی با قله بوده تو قلم چاپ شده این اند موجوده در امضا موجود چرا سادو خودشون خب دست میشین ما آن اخبار اخباری که معنا میگیریم این که معنا نکرده از کتاب کاری بوله هریز گیره دخیل بودیم هریز گیره اما وقتی میگیره سردمیر میگیره بلند میاد نه فهمیدم یعنی این هنوز من که پی نبودم اون چیزی فهمیدم در دادم دادم که استفاده بود هنوز نفهمید چطور شد ایشون تو معامل الاخبار این حمیز اوازه آخرین احتمالی که من به ذهنم رسیده که الانم مشکل تاریخی هم داره شاید تو کتاب حسین یزیدی بوده نوفری چون نوفری رو بشین استاد کار اینه علم و عدد شاید و تو کتاب پسر بردرشون مساعد بوده شاید احتمال میدن چون هم حواسش خیلی جمعه, جمعه, جمعه از اون که فکر این بنا رو مخلط ما که حذف خلای خب نمیشه یه حدیث از علی بن ابراهیم ما بعد بیا کلام ابوعبد رو به جوری که مگر نغمی کنه بگی اصلاً نیست شعر صلو نیست چون این نوفلی اهل ادب بوده احتمالاً تو کتابش اینا کامل بوده خوب دقت تو کتاب او بوده تو کتاب او هم حدیث علی بن ابراهیم بوده هم کلام ابوعبد بوده بس خب شعر نیست کل اینا برن ما حتی میشه تقریباً تقریباً, تقریباً تمام ماورا از اول تاکت بوده تفخو صیحه که ما رو شکن که ببینم نم مثلاً جدیدی باشه چی نه فهمیدیم شر؟ زوارن ابهمی میگرده میفهمم ولی من دریم نه نمیشم یک ابهمی داشته از ابو ابی کی نمکنی داره سنت مشخصیم داری داری حالا یهالی این کار مرگون صدوق رو منتبد نشدیم مرگوم عایسال و سایر هم اون هم خود که شد یک زیدی بگاره حدیث به این مقدار نیست اون زید رو سال و سال نادر حق بایشونه با این هم یک مطلب. به هر حال اونی که الان ما میفهمیم این است که در مسادر ما حدیث به اصلاح رعف ها موجود بوده در حالا یا روایت یا نوشار حسین به صاحب علیه نوارا اگه کتاب واقعا ثابت باشه در کتابی ایشان شد یا در حدیث ایشان بوده اونم الان برای ما خیلی روچند نیست اصلا این بحثی کلانه خاص خودشو و هر حال کل مسادری که ما کل ها داریم فعلا در کتاب مشهور ما یک نفره اونم صدو خلاصش جمع بکنیم کل ها این که محل کلام هاست روچند شد کلن یک نفر اونم صدو دو متنش رو در فقیه رو اونم مرسل یک متنشم در معامل اخبار رو برده مصند لكن خیلی سنده صدیه نیست یک شواهد تاریخی هم در اخل نسخ خیلی روشن نیست دو تا مشکل دارم سندی میدرد هم پیرسید خودش هم این متن رو در کتاب فقیه نیورده قیل از صدوق هم از مشاهده ما این متن نیورده باشه. واخه اینا چی میشه؟ مثلا الان شما دیگه الان خوب برکن من همیشه فلسفه فرضیه اساسی من از تصویر مباحث که به عنوان من اعتقاد به خدا نمیارم. تعبیر اون رو می که مثلا در ذهن لکه علما و فقهای به تاریخ شیعه بشینه بگه چرا؟ مثلا آرمگوی خیلی راحت میاد حدیث الله صادق خوب راست میگه. درو راست صادق. هذیک ها که در و نه تو بخاری و <تصفح> طبی ما بیا افسانه فراوان داره این تو مصادر شیعه حسابت نیست نشون میاد احادیثه لازمه عمر اشجریان راست وقتی میگه اینو برنامه صحیحونم صحیح نیست ان ها انشاءالله عرض اما این حدیث حالا من چون متن متن حساب می کنم متن اعقلها به شکل انشاءالله ثواب سر کلمات الهی چون در بین مشایخ مشهور ما یک نفر اومده نه تو امالی صدو آمده نه تو امالی مپیل آمده نه تو امالی شیخ پیسی آمده کتب مشوره ما میخ کتب عربه تو اونا منم. اون یک نفر هم دو یا مرسل و دو تا مدن مرسل و در فقیر یک مدن دیگه هم در معاند اخبار بکنم سر شرکن از خرابی داره مشکلات داره ای این راجع به حدیث اقفالله ها در مسادهی که الان ما در اختیار داریم فعلا در اختیار داریم از, از, از منابع مشهور این بلا تشبه به مجوس هم که تو این حد ذکر در منابع اهل سنت در روایت مجوس هم هست یا اون هست مشخصه که این اهل کفر هست این روایت هم من در میان کتب اهل سنت ذکر شده بلا تشبه به آل کسرا یک جا پیدا شده زیاد مشهور نیست حالا این هم هست بخشی از ارز در کتاب مرغوم حاجی نوری در مستدرک در این چاپ جدیدی که شده جلد یک در همون ابواب آداب الهمان من کراین ارز کردم شماره ابواب در کتاب مستدرک با وسائل خیلی وقت نمیخوره موضوع میشه نمیخورد مثلا در وسائل 67 اینجا هست چرا در بردی داره؟ افواب حدیث نمیدیشون استدارات بگنه مثلا ستا با چار تا با پنج شبا مثلا بیسته پر یعنی هفت با هم پر بگنه یعنی بیسته با تا اینجا استدارات نکرد. در کتاب جعفریاد یک حدیث داره یعنی در مثلا در کتاب مسترد یکی درد در این یک فرقه چهارسد و پنج یه حدیثی نقل کرده از دعایم الاسلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنهو قال و احفو یا حفو اش شواره و اعفو یا وعفو از سبال نداره سبال و سین و د و علم و همسه سه بال از همون سبله سبله با سبیر فارسی یکیه سبل دلات هرم همی سریده درمان فارسی همیه لکه این گفته شده سبال به موی زیر چانه هم یا زیر لب این موهایی که زیر لب جمع میشه به این هم گفته شده این هم بهش گفته میشه این یعنی به مویدیش هم گفته میشه الان متعاربشون سبل هم سبر رو به سبیل میگن لكن گفته شده سبال بینید موی زیره لب لب پایی که آویزان بشه سبال میگن خود کلمه سبر و سبیل و سبر توش خابیده شده مثل مثلا رونده مثل یه حالتی نیشی مثل سبیل راه راهی آدم میره سبال وقتی میگن که انسان مثل این موهای زیره زیر لبه که رو ول بکنه اونه سباز بگن خود افلمونن چیه بشه راه پیدا بکنه دقیق کردیم یا به اصطلاح حوزه ما چی میگن؟ به اصطلاح این موه های دیره به اصطلاح در فایی رو به اصطلاح راها کردن این هم آمده من سابقا هم ارز کردم حالا یا خواستین بازمه کتاب اهل سنت به نظر اینکه ای که از مسابر اهل سنت این اصطلاح آمده که سوال به معنی ریش نه معنی سبیه خود سبل با حاق سبلتون سبل به معنی سبیه و از یک چیزی من در این کتاب علیه ایوان جارشون هم علیه ایوان جارشون روزه موتون قدیمی است دیگه قبل فیلم خیدم واقعای محن عدویه بسیار عالیه در این کتاب الهیوان دو سه جایی الهیوان به یک مناسبتی یک موضوعی را از سبریه نقل میکنه با سبریه هم شنید نسبت نصف به عبدالله سبا و که این مؤسس مذهب شیعه است و یهودی بود و دو یهانی بود و آخر من از که من دیدم تا جرگی هم که من خیلی نمیکنم اینطور باشه بعید میدونم این احتمالی که من میدم که خیلی بعیده یعنی. عجیب اینه چون کتاب خیلی قدیمیه در تمام این موارده که داره دو مورد سه مورده نسخه داره محقه کتاب به زحمتی زیگر دیگر پیشیده این چاپ به صبریه داره به جای سبریه یعنی واقعا این اگه راست باشه باید خدا فکر نمی مطلب به این فضاحت باشه و علما منتبه نشدن که اصلا چیزی نام سبریه وجود نداشته اونی که در کوفه وجود داشت، ها نسبت میدن تشعیق رو به سبریه دقیق فرموده عبدالله سبا حالا هم در کتاب هرسون زیاد سبریه همی حالان هم سایتاشون که علیه شیعه میسن شیعه طریق سبریه در این کتاب که محن قدیمیست محقق کتاب نوشته در نصخه کلان سبریه چند تا نصخه رو نقره کده سبریه که ازان احتماله این ت... کلمه سبیلیه تلس شده سبیلیه سبلیه و این حرف کردم که مدت ها مثلا دارین اصحاب حلب و ها شیعه ها شناخت شیعه به سبیل بود سبیل ها شما بزرگ میزشن سبلیه نیمه که شیعه سبیل های بزرگی میزشن شعر ابن مونیر هم این اول بحث و اون مسئلی بساید طریق فعباست و شعر به من اول اصلا این شعره برای شیعه بوده. الان خیلی نصیبی ها موسیبی دارن از این سویل غیرموت آقارب بعد صوفیه بعد صوفیه حاله اگر واقعا این باشه که اصل کلمه صبلیه بوده بعد اینا سبلیه شدن و این افثانه ها رو دوست کردن خیلی عجیبه فکر نمی‌کنم فکر داره این کتاب که خیلی مهمه عجیب این کتاب هر جا سه مورد سبلیه آمده من نگاه کرده و محقیش نشونه نصیبه تمام این سبریه ها سبری هست یعنی سبیل دار پس کلمه ما به جای اعفالله ها کلمه اعف و سبال داریم من دنباله یکی موتون احادیس این متن ها رو که در مسادر مشهور گفتیم در دامن اسلام داره و اعف و سبال و قلمو الازفار اینم بردش داره ولا تتشبهو و اهل کتاب این مدنه الان در مسادره که به اسم شیعه ازادشون شیعه اسماییه شیعه امامیه منحصه به دعانه هم شوارب داره هم سبال داره هم ازفار داره و هم ولا تتشبهو و اهل کتاب داره حالا این تشبه شروعیتیه اونم من خیلی الان شاد دقیقه دقیقه دقیق نمیده هم این مرز ام سردم اگه دیروز یادتون باشه این مرز و هم تقریبا شدیهی در کتوب احل سنت داریم اگر یاد انبارتون باشه این دیروز داره لیکن اینجوریه هر کلها و جز و و غلی رو و بكم و لا خفشلات به یهود و, و نصارا اونجا با عنوان الیهود و نصارا که همون اهل کتابه شبیه این شبیه ما در اهل سنت دارید اما در میان مصادر شیعه تا اونجایی که من الان به صاف ذهنمه این داره این روایتی که هست اینه یعنی هم این عباره دیگران یعنی قدمتون خوندن کلمه هم از کلمه در قبل از این ترتیبی خوندن حدیث شماره به این صفحه 658 کتاب کنزال امار از مسادر اهل سنن چند تا مصدر داره تبرانی داره مسنده احمد داره خیلی عجیبه این طور داره پیغمبر حکم حدیث افشان مسئله نسان زیادی به احل سلطن داره یا محل شرال انسان همه رو و سطر رو و خالف و اهل کتاب چون این محاسن و اهل کتاب ادهشون سیاه می یا زر بگنی یا خیرمز بکنی و خالف و اهل کتاب قال فقال رسول, می فقال رسول الله ان اهل الكتاب یه تسرولون کتاب شلوار نمی بوشن ولی یه تدهون لن فقال بوشن ف تسر و نوبت تذبوش شما هر دو رو پوشیم لوم گرده پوشیم شروع رو پوشیم و خاله آل با اهل کتاب قال قول نهاره سبنه احلال کتاب یتخففون ولا یمتعیلون خوف نکوشم که اصلا موزیز کفشای چرمی بوده بدون ساهه مثل چکمه چکنهی که ساهه نداشد این احلال کتاب یتخففون ولا یمتعیلون نقال نکوشم و قالن نبی تخفف و من تعلیم شما هر دار بموشید خوفم و خالف و الكتاب کتاب خوشن شد فقل نهایه رسول الله این احلال کتاب یکسون اثانین هم و اثانین جمع اثنون این موهای زیر سبیه رو میگن این هم یه اصطلاح هم دیگه چود وقت ما نهیده اون چود احلال سنت هست جمع اثنون و یو افرون سباب هم سبیلاشون رو کلخ میکنن بزرگ میکنن قال فقال نبی صلوات الله علیه قصو سبال کن و وقت رو و اسانی نکن سبیلها رو کتا بکنی رو بلند بکنید و خالق رو اهل کتاب وقت در نهای نحسیز داره که سبل شاره بید. خوب دقت بکنی ول جمع از سبال قال هم جوهلی صاحب سیان بکنی و قال اله حرهی مراد از این حرهی همه ابو عبیده قاسم صدیب و قال اله حرهی مراد ابو عبیده هیه شعرا سلسی تحت اللحا موهایی که بید ریشه اللحا الاسفر و سبله این در عرب مقدم و لحیه قیلی عجیبه توی وقت ما مومده سوال اما اصلا متعارد در سوال شارده سبیله مقدم اللهی اندل العرب و ما اصبر منه ها این خیلی لطیفه اولا میگه جلو الدریش معلومه این خودش یک نکته بوده میخوا پول ما هم شیشه که این جلو الدریش رو سبال میگفته خیلی در این کتاب الدوله ام الدولستان چه ظرافتی رو به کار برده وجع الله ها داره تو سبال الان یعنی با یک کلنه با یک تیر دو نشان مخاط میگه چی پروفسوری تازه اونم بلندش بکنید چون سه بال اون مقداری از روی جنوره که نیاد دوی سینه یعنی بلند بلنده سبیله خیلی عجیب و اصطلاح این عجیب برده این راجع به کلمه وقتی سه بالکم که فعلا در کتاب داعمال اسلام آمده فعلا با این مطمئن غیر از داعمال اسلام جاری نداره بعد داره بلای و تیلنه احد هم شارب هم ولا آنت او، بود ولا شهر جناهی دوبارش بار مراد دیر بغل شهر جناهی فهم شیطانی هست تخیزوها مجنن اینجا مجنن داره مخابه هم داره کمه با هم شدیه مخبر یعنی محل پنهان محل پنهان شدن مجنن از کلمه جنه جنه خودشون همه سفره اونجا قاید میشه سفری در خودشون بید سمه یستت رو بخوا این راجع به حدیث دارمال اسلام این حدیث دارمال اسلام جایی دیگه که ما ازش داریم کتاب جعفریات در همین سفحه 65 جلیه که مستدرد ایشون از کتاب جعفریات نهاره کرده. چون در این کتاب مستدرد چرا رن سنر جعفریات رو موجب من باز دومتبه ولی که همیشه ذهن از ذهنتون باشه ارز میکنم روشه ما محمد مراد محمد محمد ابن محمد ابن عشقس مؤلف کتابه که کتاب هم بشه عشقسیاتی هم بخاطرش موسا این موسا نوی امام کازمه موسا پسر اسماعیل پسر موسا دن جعبن سامال بار آر عدی مراد اسماعی پسر امام کازم نه اسماعی پسر امام موسالی حدثانا عبی اسمایی ان عبی یعنی موسیقی جعفر ان جعفر بن محمد ان جدی جعفر بن محمد که امام صادر باشه ان عبی امام باقر باشه ان جدی علی ابن حسین جد امام صادق از حدث سید و شهر سرجاد ان عبی امام حسین ان علی علیه السلام قار قار رسول الله بلقا مصمر امیرمانی بی این صورته که دیگه این شبه و غلانه اهل سنت شبه ارسال ای یا قطعی ندرسته باشه اما مثلی که در کتاب جعفریان آمده اینکاره لایوت هدولن نه هدو کمشاره برد بیده لایوتی ولا آنتر ولا شعر جناهه فیل نشیطان یتخلی ها مخابه مخابه جمع مخبه این محل شدن. رو بیان. چی بگم؟ از که انجام شدن یشطت رو بفر. چی خواهم گفت؟ اون اعلی خدمت که مرده شد حدیث دایم الاسلام مصدرش همون جعفر یادره. خوشم شد؟ مصدر دایم الاسلام هم جعفر یاد، جعفر یاد صبرش نه آورده. لا بالا... کو سباله اون کش اما تواضع ذی به اینه با جعفریات یکیه. پس به ذهن من اینطور میاد روایت دایم اسلام برگشت یا به جعفریات یا مشعر جعفریات. این یه ظاهر بدی قبول می‌کنه. اما این صدر الان در کتاب دیگه غیر دائم نمی‌ماله. و به لحاظ تاریخی چون از بحثی من خودیات کافی رو ساله این جعفر یاد به ذهن ما همون کتاب سکونیه نسخه ایت از کتاب سکونی که پسر امام کاظم یا نویشون بردن در مصر منتشر کردن از سر من ما مصادر از که داریم الان به سبب که در اختیار ما هست مصر نصری کم داریم میراث نصری کم داریم فقط که ما الان از میراث های مصره خب دقیقاً چون میراث های مصره، مصر مصر دور بوده شیعه اونجا بود علماء اونجا نبودن اسماعیلی بودن حکومت اونجا اسماعیلی بود خیلی های دیگه میراث ها شیعی ندی در نمیاد ما از میراث های شیعه در مصر فعلا دو کتاب بیشتر نداریم یکی جفر اللهیشم داوودستان که اصلا نداریم که اون هر چه دین و این زید در هر دو کتاب آمده سرد فقط تو دارمون اسلام آمده امسای سرد محل کرام رواز و افوز سبالکم لیکن من احتمال قبلی میدم که بوده و هر واجه به دارم جردان یادم من صحبت کردم که را دیگه بینیم خواهیم واده نصف بحث بشیم این نصفه کمان چاپ شده نصفه که ما بوجودی چاپ در رحمت الله علیه در که از هین رو بودن در هم خیلی یارا که ارزش نسخه هر شد و اون که در مصدقه نرقش شده با همین نسخه است نسخه جعفری ها دیگه هم چاره. در این کتاب جعفری یاد به ذهن بنده اتحابات این همون کتاب سکونیه وقتی به مصد با این, این سندی که بوده کتاب سکونی هم سند یعنی سکونیه انل امام ساده ان ابیه ان سرم کرا ان ابیه الباغر ان ابیه سجاد ان ابیه حسین ان ابیه علیه نوری ساله و قرار سولیه و که در خیلی از اصلا رسکونی که ما علم داریم این طوره جعفر محمد ان ابیه ان آبایه ان علیه به جای ان ابیه ان ابیه بعدیش ان آبایه ان علیه ظاهر سر این بودا اینجا سقط به تفصیل گفته شد اونی که به ذهن بنده سبابا تخصیل میان این کتاب سکونی حالا من نمی فهمم با این که در کتاب سکونی چرا قومی ها نرونه کردن؟ این برای ما روشن نیست یکی صدری بود بازه شواهدی که ما دویدیم هم این کتاب سکونی هم جعبانی جعبانی یاد که قطعا هم در خیلی ها سابدهان بود درش نیجای شوقه بود خود کتاب سکونی که قطعا این نسخه به ذهن من همون کتاب و اما قبل از ما هم نهاجی نومی خیلی تشابه داره بشن. وقت شهر مفصلی کتاب که من نمیخوان رو باید یاد در قرن چهارون وارد بغداد شد تعریف کتاب سبق شواهد ما حدود سالهای سی و دهه شواهدی که ما داریم یعنی به عبارت دیگر هم تاریخی به قدمت رو اعرض کنیم دیویست و نووده دولت فاطمی‌ها یا اسماعیلی‌ها یا شیعیان تشیع در مصر تشکیل شد و این اولین دولتی بود که فقهش جعفر محمدیش قرار می شد فرق جروس فرق ما اختلاف کمی واقعه داره. یعنی رفسن اولین دولتی که مثلا اولین دولتی که رفسن ایده قضی بود، اید قرار قرارداد همین فاطمی فاطمی‌ها هست. اولین دولتی که دیگه در حلبیه رفسن قانون اجرا گیرند، قوانین اساسی به اجرا شد. شیعیان به سلطه رسیدن همین حکومت فاطمی یا اسماعیی های مثل استاد هم فاطمی ها خودشون منصور برزر زهرانی هم تمام. در عواغل تشتیل این حکومت این کتاب نوشته شده به نظر من نوشته نشده ایشان برداشته این کتاب رو این محمد قدن الهش هست این کتاب رو از موتا نبه موتا میجه از خیلرش از سیاری که موسف نگفر از امام صادق به این سنه برسوندن و همون سنه یه کتاب به اصلاح سکونی بود ذهن من این طور وقت این کتاب حدود سالهای های تیز ساد و به نحر اجازه و بعد نحر قید اجازه وارد بغداد شد از کردن نه شیخ توسی نه بزرگان دیگه از این کتاب نحر نکردن به تحضیل یعنی مازمی کردن ما خواهد اینجا بشه مشهور نشد کتاب جا نیفتی در مسادر ما جا نیفتی که شرگم داری کتاب کردن وقتی شد در حدود قرن ششم، یکی از علمای اهل سنت از این کتاب در همون زوانا جا افتاد در دنیا حدیث حتی بعضی از علمای سنت که مثل افتاد از خود نشد حدیثی حدیث. کتابش نیدن که توضیحات بشن بوده. بعد یکی از علمای احلی سنت به نام رویانی یه نسخه از دین کتاب رو به مرموم سید الله راوندی حدیث میکنه مرموم سید فضلالله اونو میگیره به اسم النوازه باز هم نوازه خیلی جانه افتاده این هم خیلی این مثل الانو و محقق و شهیر اول و اینا بیان از این نه این هم جا افتاده تا سال 1214 قرن سیزده همه نسخه از هنگ رو بودن. این نسخه هنگ نسبتا شانسش در از این دو نسخه قبلی بود این یکی جا بود مخصوصات تراسید حاجی نویش ازش استخراج شده از این کتاب بعدم مروم های بود جوی چاب کتاب رو و اصلاً چاب شد کتاب به اسطور مواد دیگه انصابه الان که موادس خارج عالما حدیث جعفر رو تو میخونن. ارزش ارزشناس‌ها بحث دیگه‌ایه، سند داره، اعتبار می‌کنه، بحث دیگه‌ایه. به حال جا هست، فعلا در مرحله بم از خدمتشیدام، تا اینکه قانونجام هست، انصافاً این کتاب الان دیگه زمینه پیدا کرده روشن شد؟ این یک نکته‌ست. یه مهم تر اینه که این روایت اگرچه یک خبری داره، در این نسخه جعفریات ما اون صدر نیست، در دائم هست، اما در اون کتاب نیست. کل دهلی صدرن و زیگرن تو نوازه رابندی هم نیست یعنی آشنا بشیم تو این نسخه اخیر که نسخه به اصطلاع ما که از کتاب وردن هست احتمال داره این نسخه در خواسته چون در حال ما این رو این یعنی پیش ما دیگه این ها که ها که صاحب دائم کتاب جعفریات پیشش بوده یه حقیقتی که شوفه بود. ده اسمش اینه چند بار در کتاب خودش رساله ریزا تعبیر کنه کتب جعفریه. ما میگه جعفریه امام یا اشعریه. اون اسمش اینه. میگه من این کتب جعفریه اسمش کتب جعفریه گذاشته. که توضیحش را اصلا شاید این اسم راش میخواین. سبب انتخاب اسم چی؟ پس بنا این به احتمال بسیار قوی اصلش در کتاب سکونی بوده به احتمال بسیار بسیار و به مرس رفته بین اصحابه های در کتاب سکونی نرمه هیچ اصحابش نقله کردن نه صدرش نه زیرش لیکن چون داعه نقله کرده و زیر خطه تو جهت پریاد هستی این نصحی کن آماداری اون دومی نواده رایی شه منسبت اینجا ای استرااب و مای داشته. بهتر راه ما به کتاب جفریات همین نرم دامه اسلام من رو شده پس کلمه پله ها غیر از مساد ربه به احتمال نری و وس بوده یا وقت سبال بوده لکن در کتاب سکونی و فعلا فعلابیار رود.